No. Nah. به نام الله که بخش گنده و با رحمت است فرمان الهی برای عذاب منکران حقیقت صادر شده است بدان عجله مکنی. پاک و است خدا و نسبت به شرکی که می برتر و عالاتر. خدا فرشتگان را همراه با روحی که با امر اوست بر هر کدام از بندگانش که سلاح بداند نازل می کند تا هشدار دهند که جز من هیچ خدایی نیست پس فقط از من پروا داشته باشید نهی نهی نهی نه. کسی که آسمانها و زمین را به حق خلق کرده است بدانید خدا بلند مرتبه تر از شرکی است که می برزند. خدایی که انسان را از نطفهای به وجود آورد و اکنون او یک دشمن آشکار شده است انعام چهارپایان پایان را برای شما آفرید که در آنها گرمای حیات بخشی برای شماست همچنین دارای منافع دیگرند و تعدادی از آنها نیز برایتان قابل خوردن است و این انعام مایه شکوه و زینت شمایند آنگاه که به استراحتگاهشان برمیگردانید و آنگاه که به بیرون میفرستید، آنها بارهای سنگین شما را به دیاری دیگر میبرند. در حالی که اگر نبودند شما جز با مشقت فراوان نمیتوانستید این کار را بکنید بدانید که پروردگارتان مهربان و باگوششت است اسب ها و استرها و الاغ را آفرید تا سوار آنها شوید و مایه زینتتان باشند و نیز چیزهایی می آفریند که شما از آن بی خبرید بر خداست که راه درست و نجات بخش را نمایان کند بدانید که در میان راه ها راهی انحرافی است و اگر خدا صلاح می دانست همه شما را به اجبار هدایت کند او کسی است که از آسمان آبی بر شما نازل کرد تا هم شما و هم گیاهان سیراب شوید و بتوانید چهار پایان را بچرانید و به باسطه این آد کشزارها و باغهای زیتون و نخل و انگور و هر میوه دیگر را می بدانید در اینها برای اهل تفکر نشانه است و شب و روز و خورشید و ماه و ستارگان را در خدمت شما قرار داد حالانکه که به فرمان او به خدمت شما در آمدند. در اینها نیز برای خیردمندان، است. در زمین نیز برایتان پدیدههایی آفرید که دارای رنگ های مختلف هند. در این نیز نشانه روشنی است برای قومی که پند پذیرند او کسی است که دریا را رام کرد تا شما از گوشت تازه آبزیان بهرمند شوید و از آن زیورالاتی چون مروارید استخراج کنید و خیشتن را به آن بیاراید و می بینید که کشتی ها دریاها را می و پیش میروند تا شما از فضل و کرم بی خداوند روزی به شاید شغل گزار شوید. و در زمین کوهای استوار و محکم ایجاد کرد تا توازن برقرار شود و زمین با حرکت خیش شما را نلرزاند همچنین رودها و راههایی پدید آورد تا بتوانید به مقصد برسید و علاماتی ایجاد کرد و به واسطه ستارگان مردم راهنمایی شدند آیا کسی که خلق می کند و می‌آفریند با کسی که نمی‌آفریند برابر است پس چرا پند نمیگیرید اگر بخواهید تک تک نعمتهای خدا را بشمارید، هرگز نمی آمار آن را بگیرید پس بدانید که خداوند آمرزنده و با رحمت است خداوند بزرگ از آنچه پنهان می کنید و یا آشکارا انجام می دهید آگاه است کسانی که به جای خدا دیگران را برای نجات و آرامش خود میخوانند، بدانند آنها نمی توانند چیزی را به وجود آورند زیرا خود مخلوقند مردگانی که زنده نیستند و نمی دانند که چه وقت دوباره زنده خواهند شد خدای شما خدای یکتاست بدانید کسانی که آخرت را باور ندارند قلبهایشان منکر حقایق است و به همین سبب مستکبرانا عمل می کنند قطعا خداوند به آنچه پنهان می کنند و یا آشکارا انجام میدهند آگاه است و بدانید که او مستکبران را دوست ندارد وقتی به آنها گفته شود پروردگار شما چه نازل کرده است گویند همان افثانه های آنها در روز قیامت هم بار گناهان خود و هم بار گناه نادانانی را که بی دلیل گمراه کرده به طور کامل به دوش خواهند کشید و چه بار بد و طاقت فرسایی را به دوش میکشند قبل از آنها کسانی بودند که نقشه های فریب کارانه کشیدند اما خدا بنیانشان را از اساس برکند و سقف را بر سرشان خراب نمود. و از جایی که نمی فهمیدند کجاست عذاب الهی بر آنها فرود آمد سپس خداوند در روز قیامت رسوایشان می سازد و میگوید کجا هستند شریکانی که برای من قائل بودید و به خاطر آنها با دیگران دشمنی می کردید. صاحبان علم گویند امروز روز رسوایی و بدبختی منکران حقیقت است. وقتی فرشتگان جان کسانی را که به خود ظلم روا داشتند می‌گیرند از ترس سر تسلیم فرود می آورند و می‌گویند ما کار بدی نکردیم. آری خداوند از تک تک عمل کردتن آگاه است. از دروازههای جهنم داخل شوید که جاودانه در آن خواهید بود. و چه بد جایگاهی است در پای متکبران. و از آنهایی که در دنیا حرمت خدا را نگاه داشتند میپرسند پروردگارتان پروردگار بر شما چه نازل کرد؟ گویند خیر و برکت بدانید کسانی که خوبی کنند در همین دنیا پاداش خوب میبینند. حالانکه حالان که زندگی جاوید از آن هم بهتر است بدانید جایگاه کسانی که حرمت خدا را نگاه دارند جایگاه خوبی است به بهشت هایی جاودانی داخل می شوند که از زیر آن نرها جاری است و در آنجا هرچه چه خواهند برایشان است. خداوند این چونین پاداش حرمتگزاران حریم الهی را می دهد. الذین تتوفاهم الملائكة طیبین یقولون سلام علیكم ودخولوا الجنة بما كنتم تعملون همانهایی كه وقتی فرشتگان جانشان را میگیرند پاک و آرامند پس خطابشان میکنند سلام بر شما به خاطر عمل وارد بهشت شوید آیا منکران حقیقت در انتظار چیزی جز آمدن فرشتگان مرگ و یا فرمان عذاب اراهی بدانند قبل از آنها نیز کسانی چنین بودند حالان که خداوند به آنها ظلمی نکرد بلکه آنها خود بخیشتن ستم کردند سرانجام دستاورد بد اعمالشان با آنها رسید و آنچرا که روزی به تمسخر می گرفتند سراپای وجودشان را فرا گرفت و کسانی که در زندگیشان شرک ورزیدند گوگند اگر خدا میخواست میتوانست می توانست کاری کند که غیر از او چیز دیگری را پرستش نکنی. در این صورت نه ما این کار را می کردیم، نه پدران ما حتی بدون اجازه او چیزی را حرام نمیکردیم بدانید کسانی قبل از آنها نیز همین گونه عمل کردند آیا پیامبران وظیفه ی جز یک ابلاغ روشن دارند؟ ما برای هر جماعتی پیامبری را فرستادیم تا خداوند بزرگ را پرستش کنند و از تاغوت و هر نوبت بت بپرهیزند برخی از آنها هدایت الهی شامل حالشان شد اما برخی دیگر گمراهی و حیرانی دامنگیرشان گشت بروید و در زمین سیر کنید تا ببینید سرنوشت منکران حقیقت چگونه بوده است ای پیامبر هر هم برای هدایت آنها حریص باشی بدان خداوند کسی را که در گمراهی گذاشته به شایستگی سیر در حقیقت را ندارد هدایت نخواهد کرد و آنها هیچ یاوری نخواهند داشت و آنها با تمام وجود به خدا قسم خوردند که خداوند کسی را که مرده است دوباره زنده نمی کند بدانید این وعده است که بر اهده اوست هرچند که اکثر مردم از درکش عاجزند خداوند حقیقتی را که شما بر سرش اختلاف می کنید آشکار خواهد کرد تا منکران حقیقت بفهمند که دروغگو آنها هستند بدانید وقتی اراده ما به چیزی تعلق گیرد فقط میگوییم موجود شد بیدرنگ موجود میشود کسانی که در یک سیر الهی هجرت کردند آن هم بعد از آن که مظلوم واقع شدند در همین دنیا به آنها جایگاه نیکی عطا می کنیم هرچند که پاداش آخرت به مراتب بزرگتر است اگر بتوانند درکش کنند همان کسانی که در مقابل مسائب و سختی ها صبر و استقامت نموده و بر پروردگارشان توکل می نمایند ما پیش از تو کسی را به رسالت نفرستادیم مگر مردانی که به آنها وعی می کردیم اگر این حقیقت را نمیدانید، از اهل فهم و آگاهی سوال کنید آن هم با دلایلی روشن و کتابهای آسمانی و نیز قرآنی بر تو نازل کردیم تا آنچه را که برای مردم نازل شده برایشان بیان کنید امید آنکه اندیشه کنند آیا کسانی که نقشه های پلید و گناه ها از این که به فرمان خدا زمین آنها را فرو برد در امان خواهند بود و یا احساس امنیت خواهند کرد وقتی عذاب الهی از جایی سراغشان بیاید که ندانند از کجاست و یا در رفت آمد روزمره‌شان مصیبت زده کند و آنها از دفع آن عاجز باشند و یا رحم کند و تدریجا با حوادث تنلخ گرفتارشان کند شاید به اقایق ایمان بیاورند زیرا پروردگار شما بسیار مهربان و باگذشت است آیا به پدیدههایی که خداوند بزرگ آفریده است نمی نگرند که چگونه حتی سایه هاشان از چپ و راس حرکت کرده و خاز خدا را سجده می کنند نه تنها سایه ها بلکه آن در آسمان و زمین است از هر جنبندهی که باشد در حال سجده خداست. بدانید که حتی فرشتگان در حال سجده و تکبر نمی‌کنند زیرا از خداوندی که بر آنها مسلط است می‌هراسند و آنچه را به آنها امر شده انجام می‌دهند القدوس القدوس الله گفت دوگانگی در پرستش را کنار بگذارید بدانید او خدای یکتا پند بگیرید و تنها از کیفر من بترسید. آنچه در ها و زمین است متعلق به اوست. حتی پرستش دائم از آن اوست. چرا از غیر خدا میهراسید؟ هر نعمتی که شما را فرا گرفته از خداست. و هرگاه مصیبتی بر شما وارد شود، به پیشگاه او زاری میکنید و انگامی که آن مصیبت را از شما دور کند، باز گروهی از شما دوباره به پروردگارشان شرک می تا نسبت به آنچه که ما آنها داده ایم ناسفاسی کنند باشد اکنون لذت ببرید به زودی حقیقت را در یافت آنها از آنچه روزیشان کردیم برای چیزهای واهی و خرافی مثل بوتان سهمی می‌گذارند. به خداوند سوگند که نسبت به اعتقادات دروغینتان بازخاست خواهید شد حتی برای خداوند دخترانی قائل می شود. او پاک و منزه است حالان که آنچرا بدان تمایل دارند برای خودشان است و انگامی که به یکی از آنها مجده تولد دختری داده شود از ناراحتی صورتش سیاه شده خشمگین میگردد. و به خاطر چون این شومی از فرد خجالت خود را از انظار عموم پنهان می کند. و به فکر فرو می روید. آیا این دختر را با خاری نگاه دارد و یا زنده به گورش سازد؟ آگاه باشید که بد حکمی می کنند. صفت بد از آن کسانی است که به آخرت ایمان ندارند و صفت برتر از آن خداست زیرا او قدرتمند و حکیم است اگر خداوند بخواهد مردم را به خاطر ظلمشان مجازات کند هیچ جممندهی در روی زمین باقی نخواهد ماند اما خدا اراده کرده است تا مدتی معین به آنها مهلت دهد آنگاه وقتی عجلشان فرارستد نه ساعتی تأخیر کنند و نه ساعتی جلوتر بیایند آنها چیزهایی را که خود نمیپسندند برای خدا می خواهد. و زبانهایشان به دروغ میگوید که تمام خوبی متعلق به آنهاست بیشک آتش نسید آنهاست بلکه آنان پیشگامان به سوی آتشند به خدا قسم که ما پیش از تو پیامبرانی به سوی امتهای پیشین پرستادیم اما شیطان عمل را در نظرشان زیبا جلوگر کرد و امروز نیز یا رویاورشان شیطان است که برایشان عذابی دردناک است و ما این قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر آن که آن چرا در آن اختلاف می برایشان بیان کنی و نیز هدایت و رحمتی باشد برای هران که به حقایق ایمان دارد و خداوند از آسمان آبی نازل کرد و به باسته آن زمین مرده و فسرده را حیات بخشید بدانید در این عبرتیست برای آنان که گوش شنوا دارند. حتی در وجود چهار پایان برای شما عبرت است. ما شما را از شیر خالصی که در شکمشان از میان سرگین و خون بیرون میآید سیراب می کنی. شیری که گواراوی نوشندگان است و از میباوی نخل و انگور هم مسکرات می گیرید و هم روزی های پاکیزه تیگه می کنید. در این نکته نیز عبرتی برای خردمندان است و پروردگارت به زنبور اصل وح کرد که خانه خود را از کوها و درختان و بناهای بلند اختیار کن آنگاه به او گفتیم از گل هر میوهای بهرمند شد و فرمان بردار در همان راههایی که پروردگارت مقدر نموده سیر کن از شکم همین زنبور شرابهای رنگارنگی بیرون می که در آن شفای مردمان است بدانید که در این نکته است برای آنان که اهل تفکرند و خداست که شما را خلق کرد و سپس می می از شما را عمر دراز می‌دهد تا آن هد که آنچه را دانسته فراموش کند و خداوند آگاه و تواناست خداوند روزی برخی از شما را بر برخی دیگر برتری داده است پس چرا آنان که روزیشان زیادتر است به زیر دستان خود نمیدهند، تا همه در برخورداری از رزق برابر شوند تا در این امتحان الهی سربلند باشد؟ آیا نعمت الهی را انکار می‌کنند خداوند بزرگ همسرانی از جنس خودتان برایتان آفرید تا از همسرانتان، فرزندان و فرزندزادگان پدید آورد و نیز از نعمتهای پاکیزه روزیتان داد. با این وجود باز به باطل ایمان می و نعمتهای الهی را انکار می کنند. بدانید که آنها به جای خداوند چیزهایی را می که توانایی عطای هیچ رزقی را از آسمانها و زمین برایشان ندارند. برای خدا مثال نزنید. خدا همه چیز را خوب میداند و این شما که ناآگاهیید. اما خداوند مثل میزند آیا برده مملوکی که اختیار و توانایی کاری را ندارد با انسان با ایمانی که به او رزق نیکو داده ایم و انواره در نان آشکار انفاق میکند برابر هستند؟ سدایش مخصوص خداوند است. نه اکثر آنها درک نمی و باز خداوند مثل میزند دو مرد را که یکی از آنها لال است و توانایی کاری را ندارد و همواره سربار سرپرست خود است و هر جا او را بفرستد نتیجه مفیدی نمیگیرد آیا چون این شخصی با آن کس که مردم را به عدل و داد فرمان میدهد به همواره در راه راست خدم برمیدارد یکسان است غیب و نادیده آسمان ها و زمین از آن خداست بدانید فرارسیدن روز قیامت به اندازه یک چشم بر هم زدن بلکه کمتر از آن است و خداوند بر هر کاری تواناست خداوند شما را از شکم‌های مادرانتان بیرون آورد در حالی که هیچ چیز نمی‌دانستید و برای درک حقایق شنوایی و بینایی و قلب‌هایتان را پدید آورد امید آنکه شکرگزار باشید آیا به پرندگان تسخیر شده در جعد آسمان نظر نمی‌افتند چیزی جز خدا آنها را نگاه نمیدارد در این نکته نیز پندیست؟ است برای آنان که به حقایق ایمان دارند خداوند خانه های شما را محل سکونت و آرامش قرار داده است و از پوست چهارپایان برای تان قرار داد تا به هنگام سفر یا اقامت جا به راحتی بتوانید آن را جابجا کنید و از پشم و کرکوموی این چهارپایان تا وقتی زنده اید به عنوان مایحتاج و وسایل زندگی بهرمند شوید. خداوند برای شما از چیزهایی که آفریده سایههایی پدید آورد و در کوهها برایتان غارها ایجاد کرد و لباس‌هایی، کالبد‌هایی برایتان پدید آورد که شما را از گرما محفوظ بدارد و نیز پوششهای دیگری که شما را به هنگام شدت و یا وضعیتهای سخت محافظت نماید. اینچنین نعمتش را بر شما تمام میکند. امید آنکه به خدایید و تسلیم حق شوید ای پیامبر اگر از حقیقت روی گردان شدند باکی نیست وظیفه تو فقط یک ابلاغ روشن است نعمتهای خدا را میشناسند، آنگاه انکارشان می کنند اکثر آنها کافرند روزی که از هر جماعتی گواهی برگیریم به منکران حقیقت اجازه سخن داده نشود و عذرشان پذیرفته نگردند وقتی که ظالمان عذاب الهی را به خاطر دستاوردشان ببینند هیچ افوی شامل حالشان نمی و مهلتی برایشان در کار نیست هنگامی که مشتکان شریکانی را که برای خدا قائل شدند می‌بینند، بینند گویند پروردگارا اینها همانهایی هستند که به جای تو میخواندیم و آنان پاسخشان میدهند، شماها دروغگو هستید در چنین روزی همشان در پیشگاه خداوند اظهار تسلیم شدن می کنند زیرا مفری نیست و آن دروغها که می از نظرشان محف شدند کسانی که به حقایق کافرند و راه نجات بخش الهی را بر مردم می بندند به خاطر دستاورد مفسد انگیزشان عذابی بر عذابشان خواهی مفزود روزی که از هر امتی گواهی از میان خودشان انتخاب کنیم تو را به عنوان شاهد بر همه اینها بیاوریم. بریم ما قرآنی بر تو نازل کردیم که همه چیز را بیان کرده است و برای تسلیم شدگان هدایت و رحمت و بشارت است خداوند به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان امر می کند و از پلیدی و فحشاب و تجاوز به حقوق دیگران نای می نماید. او شما را موعظه می کند امید آنکه پند گیرید وقتی با خدا عهدی بستید به عهد الهی وفادار باشید و سوگندهایی را که تأکید کرده اید مشکنید زیرا شما خداوند را زامن قسمهایتان کرده اید و خدا نسبت به عمل کردتان آگاه است همانند آن زن سبک مغزی نباشید که پس از آن که ریسمانش را محکم تابیده است دوباره آن را باز می کند و رشت رشته رشته می‌سازد. شما این گونه عمل نکنید تا به وسیله سوگندهایی را که محکم یاد کرده اید وسیله فری به یک دیگر قرار دهید آن هم به این بهانه که جمعیتی تعدادشان بیشتر از گروه دیگری است کسرت و قدرت دشمن، باعث شکستن هایتان نشود خداوند بدین وسیله شما را امتحان می‌کند و در روز قیامت آنچرا مورد اختلافتان است روشن می‌سازد. و اگر خدا می‌خواست همه شما را تبدیل به یک امت واحد می‌کرد. اما اراده کرده است هر که را صلاح بداند در گمراهی بگذارد و هر کس را صلاح بداند هدایت کند. به شما مطمئن باشید که نسبت به عمل مورد معاقض قرار خواهید گرفت سوگندهایتان را وسیله فریب یک دیگر قرار ندهید که قدمهایتان بعد از آن استوار شده است دوباره میلغزد و در نتیجه مزه بدی و پلیدی را خواهید چشید زیرا راه الهی را بر مردم بستهید و از این رو عذابی بزرگ برایتان مایاست و پیمان الهی را به بهای اندک نفروشید کاش میدانستید آنچه نزد خداست برای شما بهتر از هر چیز دیگر است آنچه نزد شماست نابود شدنی است اما آنچه نزد خداست جاوید و برقرار است قطعاً پاداش کسانی را که صبر می‌کنند بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد هر با ایمانی که کار نیکی انجام دهد چه مرد باشد و چه زن زندگی پاکیزهی به او عطا خواهیم کرد و به هنه آنها پاداشی به مراتب بهتر و بیشتر از عمل کردشان خواهیم داد هنگامی که قرآن میخوانی، از وسفسه های شیطان رانده شده به خدا پناه ببرد زیرا شیطان بر وجود اهل ایمان و کسانی که به پروردگارشان توکل می‌کنند مسلط نیست. تسلط او فقط بر کسانی است که دوستش دارند و به واسطه او شرک می‌ورزند. و انگامی که آیه را با آیه دیگر جابجا کنیم، بدانید این نکته به خدا ارتباط دارد. زیرا خداوند به آنچه نازل می‌کند آگاهتر است. اما آنها می‌گویند تو دروغ می‌بافی. بدانید که اکثر آنها از حقیقت بیخبرند قُلْ نزله روح القدس من بالحق الذین و و بگو قرآن را روح القدس از جانب پروردگار به حق نازل کرده است تا های اهل ایمان را ثابت و استوار کند و انبار برای تسلیم شدگان ماگه هدایت و بشارت باشد ما می‌دانیم که می‌گویند قرآن را به پیامبر بشری تعلیم میدهد زبان کسی که قرآن را به او نسبت می‌دهند عجمی است در حالی که زبان این قرآن عربی روشن است کسانی که به آیات خدا ایمان نمی آورند خدا آنها را به راه حقیقت و آرامش هدایت نمی کند و به خاطر دستاوردشان گرفتار عذاب دردناکی خواهند بود تنها کسانی که به دروغ افترا می زنند، به آیات الهی ایمان ندارند بدانید آنها دروغگو هستند کسی که به خدا کافر شود بعد از آنکه ایمان آورده است. به استثناء آنهایی که به زور بادار شدند تا اظهار کفر کنند در حالی که قلبشان مملو از ایمان به خداست بلکه همانهایی که دروازه دل را به روی کفر و انکار حقیقت گشودند گرفتار خشم الهی خواهند بود و عذاب بزرگی نتیجه کارشان است و این به خاطر آن است که زندگی فانی دنیا را به زندگی جاوی ترجیح دادند بدانید که خداوند بزرگ کسانی که حقایق را انکار کنند در راه نجات هدایت نخواهد کرد. آنها کسانی هستند که خداوند بزرگ به خاطر عمل کرد گناهالودشان قلب ها و گوش ها و چشم هایشان را از درک حقایق عاجز کرده و آنها در غفلت به سر برند. قطعا در آخرت نیز از جمله زیانکاران کسانی که فریب خورده بودند ولی بعد از آن خالصانه هجرت کردند و جهاد کردند و صبر و استقامت ورزیدند بدون شک بعد از همه این کارها که کردند پروعدگارت را آمرزنده و بسیار باگوزشت خواهند یافت در آن روز قیامت هر کس برای دفاع از عمل کرد به مجادله می پردازد. اما بدانید که جزای دستاورده هر کس بی و داده خواهد شد و به آنها ستم نمی شود خداوند شهری را مثال می زند که کاملا در امنیت به سر می و رزق و روزی فراوان از هر جا به آن شهر سرازیر می شود. اما اهل آن به کفران های الهی پرداختند و خداوند نیز به خاطر عمل بر آنها لباس گرستنگی و ترس خوشند براستی از میان خودشان پیامبری برای راهنمایی به سویشان آمد، اما او را تکذیب کردند. به این سبب، عذاب سراپای وجودشان را فرا گرفت، زیرا بدون شک ظالم بودند. فکنون ما رزقکم الله حلالا طیبا و اشکرون نعمت الله این از روزی های حلال و پاکیزهی که خداوند نصیبتان کرده بهرمند شوید و اگر او را عبادت می کنید شکر نعمتهایش را بهجا آورید بدانید که خداوند مردار و خون و گوشت خوک و را به نام غیر خدا زب شده است بر شما حرام کرده است چنانچه کسی از روی ناچاری و با بیمیلی از آن مصرف کند و خوردن را از حد نگذراند گناهی بر او نیست زیرا خداوند بزرگ بسیار آمرزنده و باگذشت است با دروغ هایی که زبانتان توصیف میکند نگویید این حلال است و آن حرام تا این دروغ را به خداوند نسبت دهید بدانید کسانی که بر خدا دروغ میبندند رستگار نخواهند شد در این دنیا اندک بهره ای می میبرند اما عاقبت گرفتار عذاب دردناکی خواهند شد. آنچرا که پیشتر برای تو حکایت کردیم، بر یهودیان حرام نمودیم. ما با آنها ظلم نکردیم، بلکه آنها خود به خیشتن ستم روا داشتند. کسانی که از روی جهالت عمل بدی داشتند، اما بعد از آن توبه کردند و دست به کار نیک زدند، بدون تردید بعد از اینکه که اینگونه عمل کنند پروردگارت را آموزنده و باگذشت خواهند یافت <تحكت> <ento thomati> <tah> <tah> ابراهیم امتی بود مطیع فرمان خدا و یگان پرست و از مشرکان نبود سپاسگزار نعمت های الهی بود و خداوند او را برگزید و به راه راست هدایت کرد و در دنیا به او پاداش نیک داد همچنان که در آخرت نیز از جمله سالهان است سپس به تو وعی کردیم که از آین پاک و یکتاپرستی ابراهیم تبعیت کن زیرا او هرگز از مشکن نبود تحریم سید در روز شنبه برای یهودیان یک مجازات بود که در آن هم اختلاف کردند بدون که پروردگارت میان آنها در روز قیامت بر سر آنچه اختلاف می کنند قضاوت خواهد کرد. با حکمت و موعظه نیک، همواره مردم را به راه نجات بخش پروردگارت بخوان و با مخالفان با بهترین شیوه گفتگو کن. بدان که پروردگارت نسبت به کسی که از راهش منحرف شده آگاه تر است. همچنان که او از هدایت یافتگان کاملا مطلع است، اگر میخواهید مجازات کنید متناسب با آن تعدی باشد که بر شما کرده هند. اما اگر شکیبایی بخش دهید بدون شک شکیبایی برای صابران بهترین چیز است. تو شکیبایی کن و بدان که شکیبایی تو توفیقی از جانب خداست و از عمل چون چان قمگین و از توته آنان خود را در تنگ نامبین زیرا خداوند با کسانی است که حرمت فرمان او را نگاه میدارند و همواره عمل کرده نیکی دارند این الله مع الذين اتقوا والذین هم محسنون صدق الله العلی العظیم خداوند بلند مرتبه بود از این از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم